مارکردنی کردنی دلیر سلین گویرانی عزیز و خوشوی سلاوتن لبیت خوشحالین لبشی بستوچوارمی خوید نوی کتیبی چشتی مجوری هجری مخریانی حتی نولاتن ایواش حور بن هجاری مکریانی لوکاتی لگل کابره یکی جولکه دا فیری کاسپی و دوکانداری بو بو بسرحاتی جانی خوی بمشیوه یا لبغدا دا جره او کابره جولکه یا کریکی چکوالی حوچ سالی هبو روژه که تا بردوکان گوتم گرچی او دو بو بابت برای بیگوره توا نفروشدین و تی ماما او نرخیان چنده منی جوتم توچت باقسانه دوا و تی جا پیمنالی؟ وتم جوتی به حфта فلسکراوا دوای دو ساعت یرمیان هات رنگی پرایبو وتی ګورجی کورن گومبووا کس نه زانی چی به سر هاتوه منی شوتم من دی تو مو بم جرایاوا براکردن رویشت وی ګورجی ګرته بو بګریان هنه متي امهتی ولا سر پړت دفرشت د فروشت تا قدو جوتی مو هموی بنواتو صد فروشتوه bale بیا چوی مشک هم باندې دپره دکردم دی اگر تو لسر ام خیابانه قوغای دست را یک راخی لسد کس یک یک چوار فلسیب خاطه سر تا اواره زوره دست اگر مشتری به نرخی تو رازی نبو چنیلی دا اگر مالکه سد یکیش خیر که با بانه چه تجیگه تر بازار نسی که و دیکر ریوه مسلمانو جولکیک لدن بازار شورجه شمچه انده فروشت مای قطوه شمچه چوار فلس بو جولکه دیده به چوار فلس مسلمانکه دبو تافلسی خیر که، جو از صندوقی پیان سندوقی د弗روشتو مسلمان به حال نیوسنگ. روز بچنیودن جوی دگرت و ملیگرد که تو با کسادی من آوده کی. گوتي نا برا. من جو گویی نه من هم از روز دو دیناری سندوق باتلاقان خیر کم. جولکه که هات دوکان تیری چاکو خوشی دگال یارمی کرد گویی کراس کمده کراس مایه دینارو صد فلز بو. یارمی گوتی نو فلز. من لیم هالخورینجان کسر منه. لم ور بو ماشتری نکره ګوتی ګران وروشت یرمیا ګوتی د سن مې ام جولکېج د چند چن قیرسېچ میا را واستتاب کمونه وته سبي او روجي او راحتو جګلو کراس یک جا زورش مالوی مالوي کوي نکرد که حساب مکرد هو دیناری زیات لسندبو او جولکې گوتم اگر جن مشتری بو سوین بچوین بسری مندالین بخو دنه به خدا او اگر مشتری شوشا اتر یانشتیکن کریو گوتن اگر خراب بده هینی نوا همیشه قبول ک مسلمان زور تانبالن لسات یک حوصله نی بود بینه تو همیشه شت کمترل نرخی بازار بفروشه لوانی لیت نزیکنو زور یاندبینی قط زیاتماس یانه نیفروشری راست سرمایشی گوریا خلاصه لسای اومه مستیوا زور شرز ای آلوگوری دکانداری بون کره کم بجوری د اسمايه کم کم یان بلم د اسمايه قرض کم باج بر رواچو جې خوښ شم هر لای امام حسین او دیوخاني نقيبو روج یک نانوا نوا منالکی باسم کړت حته بر دکان زور کسبو بو مواب ځانم به پولی من د کتاب قرضه د بم دا لفرګریا درد د تل کړيت کله مال امام خوش کی ناراضي او نه وي د غلیان بږي من دالا پرا لساق و غرق چون بيالم حلوه دابه رازم کرد کپیکو بجين وازم لما لما هم حسين هنه جوريكم لما لكي نزيك دوكان لجنه کونه ارماني تازه مسلمان بکرية گرد نوما لكي قش بيلم کريو دقل عزيز تياجيان حو لیکارم بودا حما علياكي کاری كاري حوزني كاري لچابخانيك بو پيدا کرد روجي به چارك ديناره كتا فیره کردوه قرار درا حقوقه کې کوکاته او بوروجی خو هاتی من به شهر دوکمان یې کړ که هات معامل با جرم وک امامي ګوتوې لې هجر بیو نه ولا ماده کم وابچې واب ځانم واب پول یېم دی کرد کړ به شش دینر سره نه هر د کوجاو ده من له عزیز دوی کاری چابخانه پیوستی مالی ده کړې امامي له ولا نه جخابو حالاتبو ماویګ لسلیمانی د ګل قزلجیف سمدی که اویش هر حوالی که سابلاغی و آواره بو لما لیش شیخ لطیف جیع بو. نرده بو جنی بو هاته بو. لای مهندسی که لبغدا با سرعمله دامز رابو. تنیا ای بیا کلو آواره یه دا لی پیدا بو کی به بیتامو درویزل بو. لای من دیگو سرعمله نیم. هاوکاری مهندسیم. ساعت هشتی بیانی شوفیرک با ماشینی آخر موديلوه دیر لدوامو دنبات سرکارو ی با حال کوت دو دینارم کوتو بو اصر گوتیان لی مدینه منصوره. بیانیه که زور سارد، سار چوار، سواری خد بوم که بچمه قرسند نوا کابره که سوچیکوه لسرمان حال درزی که دنیا رو ناگ بو دبینم ایمامیه ناشاره بو بر بیان سارده با اتوبوسی شقوشر طیبتی دروی بغداد چه تصر کر روشی که با بولا بول هاتلم بروانه بروانه او قسل جیوسه مدیا سکبابانه چیان بو نوسیوم؟ شرط بیا بین بینم برشق یاندم لنامکه دا نوسرا بو که که نامکه من خونده و زور شادین که سازی نوسی بود من لبغده روژ دو پاکت دخونم نت نصیب بود دو پاکت چه دخوی تواو نیگرانین لسر شاتو شو تی کل سابلا غوابو و واچوا پولیز گرتی و روانه ایران کرده و روژگ لپرز به حمدیت و کل ناصری پیک شاد و شکر بوی نوا. روش دوائی برای سلیمانی رویشت. دوائی بوی یرامو یر کلا سلیمانی خوی کردوا به دوکان علی مدهوش خیاتی شعر. درو دریش چیروکی حالات نیبو یرامو تیری باسی کساسی خوی بو کردوا. گو جواب ما هرهنده گود گوه استاده ماوی برایم ندری کده گود کرماشانی مخانقی نیبو لما هبت بر پرسیاری فرهنگ بو. حکومت گرتی دوائی کرا. حاته دوکانه کامله بغده وتی دشم دما سربازی لوژیونی فرنسي ل افریقا ل سوریه جیرسایو پیناسکی بناوی احمد حمدی پیدا کردو حاته شم عربي او انګلیزی باش ازاني ل اداره لوله نفتی عراق سوریه با مترجم دامزرا سوریه افسری بیگانه شیدوستن که مشرق بلشخر بکن دوري افسری ل تران دیبو سند نشاندو به وادي صالح بر رتبوی سروان ورجيره سالاو دوا بو تازه نکریه و عربستان سعودی افسر سوری دوستن وستن کله تایف درس بلن شی شکل درعیم شی افسر نارد لتايفو كرا کرا با حاکمې نظامی ل زور باشي پکونه و هټه وشامو جنې شی زور دولمن دی کنه ک هبو امارت كيشي شی قرار بو بیا ته مدیر بن شعربي فرع قانی شلی الا رګداو اندناو تیار ده سوتا یرمیا کسو کرمبو بلام دایی که لخوی بروحم تر بو، اوانده تاصفی سابلاغی گریتی هبو باس نکریه. هرچشتی که سابلاغیانه لینا با، اگر من لیم نخوارده دمی لینا دا، قط پیرشنی هنده نورانی و دلسوز بکردم ندیوه. لماوی دوکانداریم دا زرشتی سرنجراکشم دادی تو بلامو سیر بون، بلام کم لبیرماوه. لدوکانه که رو بندی رشی جنانه زورد فروش را بلام هر لعوارانی نزیک نویجی شوانده مشتریم بوده هاتو اویش هموجر پیاوی تازه لابون بلا ماو زور پیچوانه بو بو پیاو دکرنو جن نکرن بو هر لتاریکی تنگی نویجی شوانده دی کرن تیگه ایشتم کچ یان جنی بیرو پشک که دیانویست بدزی کسو کارین دگل عاشق یاندر کونو بچن سینما و جگی ندیاری چر با دکاندار دوکندر نه انبینه کراکه انده نرد پچشیان با بکره و لرگن و کفی خوی انبکن شعرکان ایراج میرزم حتی و بیر که حجاب و بطبوید جره شیخ عربی کی زور به کشو فشو سمال بابر لماشینی کادیلک د بزیو حد وتی سبوغ تهیا سبوغ و تر رنگ بو کشو دیوارو هر وتم متنبل همو ګورجه دوختوی رنگی کوشم بوینه با مو ریکو تماشه کړدم وتی تو کردی متنبل په یوتم لمیجه دکاندارې وتم نخیر تازم و تواد یا زور نشار زی اگر وانبا در کاری کی باش مکرده، رنگی کوشانم بوده نی کس میل می باور که تازه زنیم کسمیال و تو کسریش رشکریانه در منی تهبتی خویانه. روز یک پیش جشنی کریسمز، چنی زور، بسروسی ما، چند پارچه جله کی جشنی لکریم، لوی ملی گست چوار جود گروی منالانی دمو، گویی پلاکن دری نهه نی، جشن مندل بیگ زور نخوشه. وتم خوشکم، جریوکان هر د بېبري واده زنم لو سودایت يت قازنج نکردوه هر چی ګوتینه به به زور رازم کرد بیبا دوای دو روش پیوکات وتی بوشي جریو د بژنکو پولت نسن بځم پم پیم نه بو من د اللهو جهنه دابي جریو يبن وتی برام ته د بو شاعر به بو دکاندار نه کی تر کاري وامکه پولک شي دامي جنکی زور بدی من محترم کاغذ پاکتې کی کرے کویی قلمت پیه و تمبله، کویی اجازه هیلا سرجم خانم کد نامیک بنوسم و تمفرمو، نامی بومیر دینویک که افسر ول جبهای سپاسی کرد و رویش، محترم در رویشتن در شوشه کی جوری پرلا شکلاتی دبوبن چرشه وقایو لید زیبم، ملاکی پیری پشت کوری لرزه کی ریش دوفلی قانوتنک لیپرسیم هل اندکا جورابون و تا جریوت پیم فقیرو، ویستم قازان جیل نکم، گوتم نرخی صتو بیست فلس، و تو اللهی چونکه کردی لتون عکرم، دستم داوری، پس نیو ساعتک ها توجه نیویده، و توی آب بغداد سکب بانه عربی نزنن، کاشی گل تب منکن، منی گوتم ما مستای جن، توی که قرن بج معایی، عربی تو زور ل رحمت شو، و توی دستای یورا و کم ده، امجره سی فلس میلسن. دی تبیرم که تعاز دگال قزل جیل را خانهی بغداد بین. چون برنش بکرم. باقل گویی شجیت. بگرهد مول قزل جیم پرسی نیزانی. خم گهندم محسن. گوتم شجیتیانیشی با قزل جیم او عربی نیه. گو خورد نه. وقتی ایم احتیاجی من به گو خورد نه هی. دگال ظر لدانش جویانی شریعت بوم م دوست. شووند که بوشنعت سینما. فینه سور و جبکانی نلای من دعنا تادهات نوا. شوک فقیه اکی مزگو تی عزیز شیخانی بو همان کاری کرد. نزنم چون بو برلو بیتوا دوکان محل گرتو دگل برادریک چو مگران. ساعت دوازده شو بیرم حتوا. گوت یعنی که یک چنجار حت لطوی ده پرسی. فقیه عزیز کبیه جبو کلاوا ناویری لدرگای مزگو بداو مجیور بیبینه. وقت دست به دیوار حال دا و خشتی دیواره و برده بیتوا به آخر مکهی مجیورد درکه دکتوا جگل خجالتی در روش لسر جگه کود رفیق چالاگ بو ایک یک لازل مکان حزبی کومونیستو برپرسی بشی بغدادو. روش یک حت دوکان و کم مزگینی دیا و تمخیره و تو دا حزبی کومونیست دو درجه اندام تا دو سال دا چه تا حزبی تحرور وطنی لجیر چ اگر لازمون درچو اودم دکریت کاندید با حزبی کومونیست و تم باله بیستو ما و تی کاکی کی تو کپیه کی باشیو نشراتی احمد بودیو دیکری و رگی پلیس و وزارشدان نازانی سران حزب بگشتی تویان به اندام قبول کردوو دو سالی پیشکیان لسرحال گلتوی دستت بینه تبریکت دکم و تم ککر رفیق زور شانازی اکم که ایوه باورتان با منحیو با پاک مزانن ب حاش حزب حزبی چیکاف نتیم هیچ حزبی کوا. اگر ببیبونه، اندایم رسمی پیم رازین باشه. رازیج نبن من هر او جرم کناسي وتم. هرچی حولی دگل دا دام نهت مرا داعیو بجیه یشتم. بهوی محمود احمدو بوم آشنای جبرئیل نوکی ارمنی. زور هاتو چی دکردمون و آن من زور خوش بو. ندارو خانیک بناؤ سعادت کاری دکرد. روزیکلی پرسیم تو ل ایران افسری کی شعر دناسی بنوی یعقوب. وتم لبوکان بوم آشنای درجه سروان بو لناسین ولاتی کود و اشایرکانی دا پسپوری که به هاو تا بو جا تو بو دیناسی لولام داوتی کره او دو سال بو بناوی اجامی کی باغوان ایرانی لقصر و ظهوری مال پادشا دا بخشوان بو تابیدی بام احوال تویلی دا پرسیم من لمحمودم دا پرسیم جواب بوده برد او رو جانه رویشتوا بو من سلامی منی لیبکو پی بل من پشموه یک جبرایلی شلاطو درچو کدارو خانکه ملکی حزب کمونیستی عرق بوا. لساعت پینجی بیانیوه تا دوازه نیمه شولگرمه چلو هشت و پنجه درجه لدوکنده با پیو بطنیه رانده بورد. خوارنی بیانیو نیوه روم نانو شربد بو. زور لواز بو بوم. رمزانی شم گرد. لپر نخوش کودم. چو ما بیمارستانی مجیدیه پشمو روش بی اوش چابم گوتیان برو. تو توماز یرمیه گوتی کاری که باشم با لسر کشتی نیوان دزله پیدا کردوی دکانه که بفراشتم پاش قرز و دینارم با مایه و روش با روش خراب ترده بوم امر دبابی کویی لطرف حزبی پرتوه هد که ایمه آگامان لید بی روشانه دی برد ملای دکتور نجیب محمود نویگ درزی و درمانی با دنوسیم هر نسخه که دی نوسی هیز دارو خانه نی بو جگل یک دوای وی که من ځانې خوانی د ډاکټره خاوني داروخانه کې شو درمننن بناوي نه ني دنسه کس سړي در نکه. اجازه چونه لونه سيل به دست او بو تا نه خوش قراني کی دمه نیدهشت د دستي درچه غشت مړه خندر شمو چاوم کمیدید بر دیانه او چیلک ران کې شمو به کول دیانه بردمو سر حکیم که زیاد کړ هم اغای کوه که زور کرده کی بو جگلوه که خرجی اوتیلو درمانی خسته بو سرخوی حولیه داب منیر نه لبنان. با اوشم لبینه چه لو که تاوه که هاته بو مدیوی عراق تنیا سی جار شعرم گوته بو. یکیانم لپشت اکسیک دگل صدیق حیدری نوسی که سرطاقی بادربدری یان لمالی خومو جواب یکی نامی بشعری قزلجیو لو اوتیلش با که لی قبرکمو خوشی دواروش. علی حیدر سلیمان که کردیک بو, بو بو وزیری لش و که که زیاد جگه بگرتمو به پاسپورت نردمی آسایشگای بحنس لچی ای لبنان لسرحسابی حکومت. برلوی بروم نو مالکم دا به عزیزی نانوه که بمال مال نمینو کاری چپ خانکی بکم. گرانی عزیز و خوشویست لیرده و بمشیویا حتی نکوتایی بشی بستو چواری خوید نوی کتیبی چشتی میجاوری هجاری مکرینی تا بشی کتر شوتن عرم، جیانتن شدو کامران